به شما بگویم که حتی به فکر خودکشی افتادم. حتی روزی تنها به همون دریاچه بیوست بولگ رفتم و تنها سوار قایق شدم و پارو زدم و برقی ثانیه ای خاطرم رو روشن کرد که مثل دوناتلو کار خودم را یکسره کنم. چشمم که به آب کدر دریاچه افتاد عالم سیاهی را دیدم. وحشت کردم و از ابلهی خودم خندم گرفت. وقتی شمعی از زندگی خود را برای آن جوانک زردنبو که در مون پارناس منیاتور می فروخت و زندگی میکرد نقل کردم به من گفت تنبلی برو کار کن تا لذت زندگی را بچشی حق با او بود همین خاصیت در من وجود داشت وقتی بچه بودم فزت السلطان را صدا میزدم که از روی کرسی کاسه آب را در دهنم بگذارد این پرورش دوران کودکی من بود چطور می توانستم کار کنم برای بالا رفتن از نردبان بلند هنر سر نترس و پشتکال لازم بود که من در خود سراغ نداشتم نمی توانستم ساعت ها ماها سالها بنشینم و سر چیزی که مایل بودم با رنگ و خط به صورت انسان فهم درآورم کار کنم این حوصله به من داده نشده بود من همیشه راه سهلتر را انتخاب می کردم دیگران با ثبات بودند و من این را می به خودم صدمه می رسندم کار هم می اما بالاخره ناتمام می ماند تفریف و سرگرمی بر من غلبه داشت و مرا به عالم دمدمی می آخ استاد استاد شما از این حیث مرد عجیبی بود اگر من او را آنطوری که پس از برگشت به ایران شناختم شناخته بودم زندگی من بر پایه دیگری و سوار می شد. من جرعت نمی کنم حتی وقتی که تنها صورت او را در خاطرم می بینم بدی از او به زبان بیاورم. اما استاد شما یک معشوق من خیلی به من ظلم کرد. سر این پرده که شما در تالار موزه برای من تشریح کردید خانه های را می گمم.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 با کلماتی نزیر آنچه گفتم پیره را معرفی می کرد. شاید بیست بار خطوط صورت او را عوض کرد. ساعتها در جنگل های مازندران نشست و نقاشی کرد. صبح زود در بخبه های زهر، تابستان، زیر باران، اول شب در محتاب و شبهای تاریک که آسمان پوشیده از ابر بود. یک بار زمستان که در مازندران به افباریده بود، آنجا مسافرت کرد تا جنگل را در جامعه سفید تماشا کند. گاهی چند تا درخت را از چند نظر مختلف در چند نور گوناگون نقاشی می کرد تا بهترین حالت را دریابد. اگر می که برای نقاشی آنقدر باید زحمت کشید، هرگز قلمو به دست نمی گرفتم. من اینطور ساخته نشده بودم. به من کار کردن یاد نداده بودند. من احتیاج نداشتم به اینکه کار کنم تا روزگار بگذرانم. دیگران بودند و با میل و رقبت همه کارهای من میکردند. پدرم شعاری داشت. هیچ وقت کاری را که دیگران میتوانند برای تو انجام بدهند خودت دنبال نکن. میگفت کارهای بزرگتری هست که از دست ما برمی آید. اما از من هیچ کاری بر نمی آمد. از همه بدتر این بود که من قدرت تشخیص هنر را از ابتضال داشتم خودم بیش از هر کس دیگری احساس می کردم که این آن چیزی نیست که در جست هستم نظر من خیلی عادی بود اما آنچه از زیر دست من از آب در می آمد مبتزل و بیجان و بی بود و همین مرا از ادامه کار باز می داشت همینطور ها شد که حسلم سر رفت. از زندگی خسته شدم. از زندگی در پاریس بدم آمد. سفری به ایتالیا رفتم. آنجا در مدار سرک کشیدم. با توصیه که از استادان نقاشی خود در پاریس در دست داشتم و همراه سرهنگ آرام که آن وقت برای بازدید وضع محسین نیروی دریایی در روم به سر می به آتلیه های چند نقاش بزرگ ایتالیا سر زدم.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 شهی در تمجید استاد گفت و بعد از یک جوان دیگر ایرانی به اسم خدا داد که حکومت که استفانو توانست در اکولیس آرتس آرز اسنویسی کند صحبت کرد این همان پسر که زردنبوی بود که من به او اشاره کردم استفانو یکی از بزرگترین نقاشان دنیا بود و پرده هایش به قیمت های گذاف در جهان به فروش می رفت. عظمت هنر ایتالیا و کلمات ستایش آمیز بزرگترین نقاش دنیا از ماکان کوچکترین مقاومتی را که در وجود من داشت از بین برد و امید مرا بدل به ی کرد. به یاد ملاقات با او افتادم. آن مناظره را، موقعی که نقاشی هایم را در دست داشت و یکی یکی تماشا می کرد از مد نظر گذراندم. وقتی آنچه را که درباره او به پدرم گفته بودم به خاطر آوردم، خجالت کشیدم. این آخرین ضربت مرا واداشت که تصمیم خود را بگیرم. شکی نداشتم. آنچه استار ده تهران به من گفته بود درستتر بگویم آنچه نگفته بود درست در میآد. من جن یک نقاش هنرمند را نداشتم و محیط اجتماعی که در آن میزیستم قدرت و پشت کار را از من گرفته بود. این را درک کردم. اگر او آن روز به من گفته بود،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 پس از استاد نزدیکترین کسی که در زندگی من وجود داشت پدرم بود. هر وقت بیچارگی خود را در آسانه او احساس می کردم. خوشم می آمد که سرم را روی شانه پدرم بگذارم و بگیریم. پدرم مرد عاقلی بود و گمان می کنم قبل از آن که مهر مرا به دل بگیرد اصلا مزه عشق و مهربانی را نچشیده بود. او فقط در فکر آینده بود و میخواست من را خوشبخ بداند. در یک از نامه هایی که در سال سوم اقامت خود در پاریس و یک بار پس از آن که پدرم کمابیش از وضع زندگی من از نامه ابلهان بدخواه اطلاع حاصل کرده بود نوشته بودم که در زندگی خود اشتباه بزرگی مرتکب شدم و حقش نبود که به فرانسه بیایم و چه بهتر میشد که در همان تهران می‌ماندم و با یک زندگی عادی سر می‌کردم. به با او سریح و آشکار نوشتم که آنچه نقاش مراف تهران درباره صنعت نقاشی من عقیده کرده کما بیش نزدیک به حقیقت است اما پدرم یا نفهمیده و یا توجهی به مطالب من نکرده بود وقتی از روم به پاریس برگشتم نشستم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 که تمام های زندگی پرتلاتوم خود را در اروپا نمی‌توانستم به پدرم بمیسم. اما باور کنید با وجود این تا آن حدی که از دستم برمیآمد کشیدم صادق باشم. نامه‌ای که در جواب گرفتم خیلی یأس‌آور بود. پدرم به در جواب نوشت که او در زندگی جز سعادت و رفاه من هیچ چیز نمیخواهد و اصلا میلی ندارد برای آینده من نقشهی ترک کند.